صفحه هفته دو داراب را از صورت و موبد جاماس را از نوساری و موبد دیگری را از بروچ انتخاب نمود و در تعلیم آنها هممت گماشت و زند و پهلوی به ایشان بیامخت. شه مردان 1363 صفحات 428 و 429 این مباد دیگر به احتمال قوی میباید دستور فریدون پسر دستور کامدین باشد و جماسب از نواساری دستور جماسباسا است و اولین آنان دستور داراب پور هیربد دارو استاد مشهور انکتیل دوپران. به همین مناسبت باید به خواهش خود او در پایان نوشت نسخه بهرامگشت به خط خودش مبرخ 1093 یزدگردی بر او دارود فرستیم هر که خاناد، ایاف آموزاد، پژین پژین یا نسخه دیگر کناد این دینبنده را به نیکنامی و اشوروانی یاد کناد زیرا که به دنبال اقدام فرهنگی و خیرخواهانه دستور جماس به ولایتی از آن پس بسا کسان به خواندن و آموختن و پژوهیدن این آثار کهن بسیار کوشیدند انگامی که دستور داراب و نیز دستور کابوس سرانجام با گفتگوی بسیار حاضر شدند، اوستا و پهلوی را به انک تیل دوپران بیاموزند، زمانی بود که موبدان هرگز حاضر نمی‌شدند کتاب‌های مقدس را حتی به بهدینان هم نشان دهند. وشش انگتیلدوبرون و مساعدت بخت این فرصت گذشتنی و نادر را پدید آورد و وی توانست راهی تازه پیش پای پژوهندگان بگشاید و جهانی تازه بسازد برای نظاره و ادامه حیات آنچرا که بهدینان دینان زمانی در حفظ آن کشیده بودند آچیتو دوپران روزی را که در آن توانست تحصیل خود را نزد استادانش آغاز کند با شور و هیجان در دفتر خاطراتش ثبت کرده است روز 14 مارس 1759 برابر با 6 مهر 1128 هجری شمسی و 1172 هجری قمری در این روز این مرد شگفت وارسته و مشتاق و بی به همه چیز جز راهی که برگزیده بود با شوقی غریب کاری شگرف و ناشناخته را آغاز کرد و به سمر رسانید وجود وی محبت غریبی برای جامعه زرتشتی بود زیرا همچنان که اسناد مانوی از قعر شنهای بیابان تورفان سر برابردند و از ناشناختگی به در آمدند به همانسان نیز در حقیقت دانش و علم موبدان از سر نوع بازشناسی و معرفی شد انگتیل دوپرون پاریس 1731 تا 1805 در خانواده متوسطی به دنیا آمد و تحصیل دانش برایش سهل نبود. وی در فرانسه زبان عبری آموخت و در 1754 نسخه ای از ساده را که در آکسفورد به صورت سنگی چاپ شده بود دید. مشتاق کشف این راز و نیز سردرآوردن از کتاب‌های سانسکریت در کتابخانه سلطنتی پاریس گشت. به شوق اخیر بود که هند را بر کرمان ترجیح داد و در 24 فوریه 1755 با کشتی روانه بندر پوندیشیری در مشرق هند شد. وی با بیماری و مشقت و فقر سخت روبرو بود. در پندیشیری فارسی آموخت و سپس با دشواری سرانجام خود را به صورت رساند در سراسر مدتی که به فراگرفتن متون مقدس و نسخه برداری آنها پرداخت با فقر مطلق می ساخت و چنان قرضی بالا آورده بود که اگر اتفاقا دلالی هلندی از او دستگیری نکرده بود چیزی برای خوردن نداشت در راه بازگشت به وطن باز هم دوچاره بیماری و گرفتاری شد و در چهارده مارس 1762 توحیده استر و فقیرتر از آغاز سفرش به پاریس رسید و جبنیا 1351 صفحات چهار تا یازده آنگتیل دوپران به محض بازگشت کتابهایی را که با خود آورده بود رجب 1351 صفحات 14 تا 17 به کتابخانه سلطنتی تحویل داد رجب 1351 صفحه 11 و سپس به کار تحقیق و مقاله نویسی و ترجمه و ایراد خطاب پرداخت در آغاز از هر سو به او حمله شد او را ناسزا گفت و ویلیام جونز جوان انگلیسی در مقاله‌ای که در نوامبر 1771 در روزنامه فرانسوی نوشت و انگتیل توهین کرد رجبنیا 1351 صفحه 12 ویلیام جونز همان کسی است که بعداً اصطلاح زبان‌های هند و اروپایی را وضع کرد و هنگامی که انجمن آسیایی بنگال را بنیاد نهاد انکتیل دو به او تبریک گفت انگلیسی مدعی بودند که انکتیل زمینه تحقیق و پژوهش در آین زرتشت را از ایشان را بود است. یکی از استادان آکسفورد به نام توماس هاید که عربی و فارسی می دانست بر اساس کتابهایی که به این دو زبان بود در 1700 میلادی کتابی درباره آیین زرتشت نوشته بود. انگتیل دوپران از همین کتاب متاثر شده و در پی شناخت زرتوشت و آینوی برخواسته بود. زرتوشت را در اروپا از این پیش از ساهران کلده و استاد فیساغورس و افلاتون و یا شاگرد انبیای بنی اسرائیل و یهودی زاده میپنداشتند و او را ابراهیم زرتوشت می خندند. رجب نیا، 1351 صفحه 3 آکتیل دو در 1767 در انستیتوی زبان فرانسه مقاله‌ای درباره آیین زرتشتی خواند و به عضویت آن سرفراز گشت. در 1771 شاهکار خیش زنده اوستا را انتشار داد. رجب نیا 1351، صفحات 12 و 13 در انقلاب کبیر فرانسه در اوت 1795 خواستند برایش مستمری برقرار کنند ولی نپذیرفت در فقر کامل و آزاده زیست و جز دانش و درویشی راهی نگزید پس از درگذشتش ناشر آثارش تیلیارد در مطبوعات فرانسه نوشت که در انگلستان حاضر بودند آثار او را به سی هزار لیره بخرند و در آنجا چاپ کنند و او نپذیرفته است از کلمات اوست که چشم به راه حق شناسی نباشید تا با نمک ناشناس سر و کارتان نگفتد. پس از انکتیل دوپرون بود که توجه همگانی برای آموختن و پژوهش در فرهنگ و دین زرتشتی جلب شد و مطالعات جدید در شناخت ایران کهن آغاز گشت. در این هنگام بود که مجاهده و جانفشانی موبدانی به بار نشست که نسل در نسل در نگاهداری و پاسداری آثار کهن نیاکانی رنج برده بودند. سه ارتباط با هندوستان و لقب جزیه در پرداخت جزیه زرتشتیان به ویژه با مشکلاتی روبرو بودند که حاکمان و زورگویان محلی آن را برای گرفتن باج بر این مردم بیدفاع روا می دوشتند. نمونه آن در زمان کریم خان زند ضبط شده است. هنگام حمله محمود قلزایی به ایران و از غندهار به سمت کرمان آمد. زرتشتیان در گبر محله و بیرون استکامات شهر می به سر می بردند. لذا بیدفاع قتل عام شدند. بقیت و در حدود یک دهم ده جان به در و با حال پریشان به درون حصار شهر پناه جستند. اما جزیه و مالیات سرانه قبلی ثابت ماند و میان افراد زنده و توحیده است و نادار تقسیم شد. این طرز پرداخت جزیه تا عهد کریم خان زند ادامه داشت ستم در این جزیه ستانی به حدی بود که زربال مسلی در زبان دری زرتشتی میگوید که فلانی مثل افشار است یعنی بی نهایت و ستم پیشه در زمان کریم خان که شاه به عدل و داد مشهور بود دو تن از کرمان به شیراز رحصه پار گشتند تا عرض حال به او بدهند اما یکی از رجال مانع این دیدار میشد و یک سال و نیم آن دو در شیراز سرگردان ماندند سرانجام ملا کاووس از پارسیان هند که منجم بود و در حدود سه سال و نیم با پسرش ملا فیروز در دربار کریم خان به سر برده است عریضه ایشان را به شاه تقدیم کرد و خان زند فرمان به رفع تعدی و ظلم گماشتگان حکومتی داد ارتباط میان زرتشتیان ایران و هند برقرار بود از ایران مهاجرت‌ها برای یافتن وضع اقتصادی بهتر، گریز از توهین و اجهاف رهایی از شرایط دشوار داخلی و نیز تحصیل علم و مشارکت در امور دینی و گاه هم ازدواج انجام می‌گرفت. پارسیان هند که به توانگری و رونق و رفاهی رسیده بودند، از وضع رقتوار همکیشان ایرانی خود خبر داشتند. پس در صدد اقدامی مثبت برآمدند در سال 1854 میلادی انجمنی به نام انجمن بهبودی حال زرتشتیان ایران به ریاست سردین شاه پتیت بارانت برپا شد. همین انجامن بود که ماینک جی لیم هاتریا را به ایران فرستاد. داد. پور 1926 صفحه 29 جز آن دو انجمن دیگر برای خدمات عمومی به ایران وجود داشته است یکی به نام ایران لیگ و دیگری موسوم به انجمن زرتشتیان ایران به واسطه یک کوشش انجمن اخیر بود که پشوتن مارکار مدارسی تازه در ایران ساخت پرداوود 1926 صفحه 26 مایک جی لیم جی، صورت 1813 میلادی تهران 1890 میلادی برابر با 1259 هجری اسدی موفق شد که فرمان لغو جزیره را از ناصرالدین شاه در تاریخ 1299 قمری برابر با 1882 میلادی بگیرد اشیدری 1355، صفحات 436 تا 438، شه مردان 1363، امینی 1380، صفحات 8 تا 10. این مهمترین اقدام برای بهبود وضع اجتماعی زرتشتیان بود و از آن پس جامعه زرتشتی به سوی برابری و تصاوی قانونی با دیگر هموطنان گام برداشت و موفق شد که در حد توان خیش قدماتی به کشور انجام دهد فرمان لغو جزیه پس از 29 سال تلاش دشوار و شبان روزی به دست آمد و در چند مرحله انجام گرفت امینی 1380 صفحات 7 تا 9 با این فرمان دست تعرض و تعدی حکومت محلی و نایبان نیز از جان و ناموس زرتشتیان کوتاه شد. به این مناسبت مانک جی در تهران جشنی بزرگ در تاریخ هفته سفر 1300 قمری در باغ زهیر و دوله گرفت و نطق مهمی ایراد کرد. در شهرهای یزد و کرمان و کاشان هم زرتشتیان جشن گرفتند. وان گذشته از کارهای مثل رواج دادن صدرپوشی برای نوجوانان و تعمیر نیایشگاه‌های زرتشتیان و بنیان نهادن صندوق های خیریه اقدام به تشکیل انجمن زرتشتیان کرد. امینی 1380 صفحه 5 این انجمنها در یزد دو کرمان برپا گشتند و گرچه هر یک دورانی از فطرت را از سر از همان زمان تا کانون سمتی رسمی داشتند و مستر خدمتهای گوناگون بودند وی خدمات فرهنگی در زمینه آموزش کودکان انجام داد که بعدا مبنای تأسیس مدارس زرتشتی شد در این مدارس کودکان و نوجوانان زرتشتی و غیر زرتشتی تحصیل میکردند و هنوز برخی از این مدارس در کشور برقرار است مانک شخصیت برجسته با استعدادهای ذاتی و علاق دلسوزانه بود است وی در ماهانه کرمان در سال 1272 قمری برابر با 1225 یزدگردی لقب درویش فانی را از رحمت علی شاه قطب سلسله نعمت اللهی ستاند شه مردان 1363 صفحه 624 مانکجی در سفرهای دراز خود در عراق از محضر فقیه عالی قدر شیعه حاج شیخ مرتزا انصاری، درباره معامله و رفتار جامعه مسلمان با زرتشتیان پرسش کرد و این فقیه هرگونه شکستن حرمت و آزار و عذیت طایفه زرتشتیان را حرام دانست مانکجی صاحب شور ایران دوستی و شوق به آشتی و روشنبینی و سعه صدر بود صاحب تاریخ کرمان در 1286 قمری کتاب خود را برای به نوشته و این کتاب در مؤسسه شرق شناستی کاما محفوظ است. شه مردان 1363 صفحه 617 و 618. پس از مانکجی انجامن اکابل پارسیان هند اختیار و تشرا به پسرش برمازجی واگذار نمود. وی زود درگذشت و به جایش نمایندگی هند در ایران را کسانی دیگر به عهده گرفتند یکی از ایشان کیخسرو جی خان صاحب امینی 1380 صفحه 210 بود که به خدمات مانک جی ادامه داد چهار مشارکت در خدمات فرهنگی و اجتماعی مانک جی صاحب در سال 1235 یعنزد گردی تعداد 32 کودک و نوجوان زرتشتی را از کرمان و گزد به تهران آورد و با فراهم کردن وسایل زندگانی ایشان را در دبستان شبانه روزی که بنیاد نهاد به تحصیل علم واداشت سپس راهی دیگر بازید و در یعنزد و کرمان به تحصیص مدرسه همت گماشت شه مردان 1363 صفحوت 638 و 639 از جمله در قنات قصان کرمان مکتب خانه ساخت شاهروخ 1355 صفحه 41 امینی 1380 صفحات 223 و 224 در تلاش های بعدی مدرسه های پدید آمد و بعدن غیر زرتشتیان هم در این مدارس به تحصیل پرداختند امینی 1380 صفحه 5 این اقدامات را نمایندگان بعدی انجمن عکابر پارسیان همچون كیخسروجی خانصاحب و عردشیرجی ریپورتر پی گرفتند با زیروبم چند کوشندگی در این راستا به بار نشست. چنانکه در سی و پنج سال پس از مرگ مانکجی آماری در دست است که آن از 818 نفر زرتشتی ساکن تهران دویست و گیازده نفر مرد با و سی نفر بی سواد، و چهار زن با سواد و 116 زن بی سباد. از پسران 165 نفر با سباد و 66 نفر بی سباد و از دختران 89 نفر با سباد و 87 نفر بی سباد بودند درصد زنان با سباد در اواخر دوران قاجاریه در اینجا قابل توجه هست امینی 1380 صفحه 210. تا سال 1225 یزد گردی برابر با 1235 خرشیدی در یزد 11 مدرسه زرتوشتی باز شده بود است. اشیددی 1355 صفحه 207 ارباب عرباب کیخسرو شاهرخ از سال 1281 خرشیدی به دنبال تلاش ماینکجی و دیگران ساختن مدارس را از سر گرفت. به این قدیمی را تعمیر و نو کرد. در کرمان چند مدرسه از جمله سباب مدرسه دخترانه را شد. شاه رخ 1355 صفحات 41 و 42. امینی 1380 صفحه 224. در یزد دبیرستان کیخسرو شهر یزد در 1258 گردی و دبستان پسرانه خدادادی خرمشاه در همین سال در کرمان دبیرستان ایران شهر در 1260 قورشیدی برابر با 1324 قمری وشایع یافتند در صفحه هشتاد تصویری از ارباب کیخسرو و شاهروخ دومین نماینده زرتشتیان در مجلس شورای ملی وجود دارد در تهران دبستان دخترانه ایرج در سال 1283 یزدگردی برابر با 1293 خورشیدی این مدرسه اصلا در 1287 خرشیدی تأسیس و بعدا نیز به نام دبستان گیو در 1327 خرشیدی بازگشایی شد و دبستان جمشید جم در 1285 یز گردی همزمان با دبستان پسرانه ایران شهر کرمان و دبیرستان فیروز بحرام در 1302 خرشیدی و دبیرستان انوشیروان روان دهادگر در 1315 خرشیدی به راه افتادند این مدارس نمونه‌های انگشت شمارند از مدرسه هایی که به همت زرتشتیان و در بسیاری از موارد با کمک پارسیان هند دائر گشتند امروزه بیش از پنجاه مدرسه زرتشتی در سراسر سر کشور برقرار است و این شماره البته در قیاس با کل مدارس ایران اندک است اما با رجوع به تاریخ افتتاح آن می شود به خوبی ارزش فعالیت فرهنگی زرتشتیان را در کل روند تعلیم و تربیت جدید ایران مشاهده نمود این مدرسه ها در چند دهه اخیر اغلب به دولت واگذار شد زیرا سرمایه وقفی آنها تکافوی حزینه را نمی کرد امینی 1380 صفحات 209 تا 279 گرچه همواره مدرسه زرتشتی که اختصاص به دانش آموزان زرتشتی داشته باشند، اندک بودند. در این مدرسه ها گروهی از فرهنگیان زرتشتی به کار پرداختند. که کشور خانم مزدهیسنا در دبستان دخترانه شهریاری کرمان و بانو خانم بهزادیان ناظم دبیرستان عنوشی روان نامورترین آنانند و نیز در مدرسه پسرانه میرزا سروش لهراسم در یزد و برزو آمیقی در کرمان در حاشیه می شود به این نکته نیز اشاره کرد که از جمله علاقه زرتشتیان که شخص مانکجی به آن توجه داشت، سر نویسی و نوشتن فارسی سره بود است مثلا امینی 1380 صفحات 68 تا 90 البته زمینه برای گرایش به فارسی سره طبعا در نزد زرتشتیان مورد انتظار است و اسباب آن نیز مهیا اما باید توجه کرد که چنین گرایشی را در دوران پیش از تجدد در نوشته‌های زرتشتی نمی‌توان یافت حتی به دنبال چنین گرایشی بود که شهادروان موبد اردشیر آذر گشنه از تعدادی از واژه‌های عربی را از نیاش‌های روزانه زرتشتی بیرون ریخت و رسی دست میم او بیست و نه امروز تأثیر این تمایل که از سوی دیگران هم آغاز شده بود و هم ادامه یافت و البته گاهی نیز است به صورت زنده شدن بسیاری از واجه های اصیل فارسی و ایرانی و به فعالیت افتادن دستگاه واجه زبان فارسی دیده می شود زا پارسی در سال 1315 خورشیدی به بهره برداری رسید. ارباب بهرام دینیار و چند تن دیگر آمبولانسی برای کمک به بیماران در دهات یزد وقف کردند. این زایشگاه در سال 1333 تعطیل شد و انبارش را در 1335 به زایشگاه و خورشید سپردند. امینی 1380 صفحه 619 بیمارستان گودرس که زرتشتیان آن را بنیان‌گذاری کردند هنوز به کار ادامه می‌دهد امینی 1380 صفحه 619 در تهران نیز بیمارستان و زایشگاه ورجاوند و نیز بیمارستان رئیس بهرامی از بیمارستان‌هایی بودند که زرتشتیان آن را ساخته بودند و اداره می‌کردند. بیمارستان نامدارانیز نیز از این جمله بود که پس از انقلاب اسلامی نام خود را حفظ کرده است. شادروان سیمین صرفه یا پروش است که در یزد مامایی درس خوانده بود در سالهای جنگ دوم جهانی و پس از آن برای بازدید از بیماران با دوچرخه به خانه آنان می است. پزشکان و پرستاران زرتشتی در خدمات پزشکی پیشگام بودند و در یزد دو کرمان و تهران در دوران معاصر برخی از آنان سرشناس بودند و هستند. از جمله خدمات پزشکی بینام زرتشتیان را در دو مثال میتوان دید. شادروان دکتر فریدون ورجاوند از آغاز کارخیش از دهه سوم قرن. در تهران رسم داشت که به نوشتن شرح حال بیماران بپردازد و این امری که تازه چند سال است در تهران متداول شده است مورد دیگر خدمات بی‌سر و صدا و متوازعانه و کاملا ناشناخته شادروان دکتر خدامراد مرادپور، پزشک حاذق و پژوهنده هوشمند و توانایی زرتشتی است. در طرح برانداختن مالاریا در ایران، کار با فروتنی و در سکوت محض انجام گرفته است. و جز همکاران نزدیکش هیچکس از ابعاد مهم و حساس خدمات آن شادروان با خبر نیست. در دوران مشروطیت زرتشتیان در قیام مشارکت جستند آنها از طریق پرداخت وجه نقد و کمک مالی و وارد کردن اسلحه به وسیله بازرگانان زرتشتی اشیدری 1355 صفحات 241 و 242 و نیز های پارسیان هند به ویژه در قیام همکاری داشتند تجارتخانه های جمشیدیان جهانیان و مهربان پارسایی با مجاهدان معازدت ورزیدند از شهیدان زرتشتی در این مبارزه ارباب پرویز شاه جهان اشیدری 1355 صفحه 243 و فریدون خسروه اخرستاني معروف به گل خورشید را می شود نام برد. ارباب پرویز در جریان پخش اسلحه شناخته شد و به قتل رسید. فریدون خسرا اهرستانی، از معستسان انجمن زرتشتیان تهران و رئیس شعبه تجارتخانه جهانیان در تهران بود. وی خبر گرو رفتن جواهرات سلطنتی را در بانک استقراضی روس جهت دریافت پول به دست مستبدان فاش کرد و به مجازات آن کشته شد. اشیدری 1355 صفحه 246 و 247 سهم مهمی که زرتوشدیان در دوران ناصر دینشاه و مزفر دینشاه در اقتصاد کشور داشتند به تجارتخانه و صرافی ارباب جمشید جمشیدیان یزد 1229 خرشیدی، تهران 1311 خرشیدی باز می گردد. امینی 1380، صفحات 91 تا 92 و ماننده بسیاری از کودکان زرتشتی به اجیری در تجارتخانه خانه‌های تهران گماشته شد و از یازده سالگی کار خود را شروع کرد. وی در جوانی به کار تجارت، صرافی، بانکداری و کشاورزی مشغول گشت و در 1277 خورشیدی برابر با 1312 قمری با همراهی میرزا دینیار شهریار و اردشیر زاره رسما تجارتخانه خانه جمشیدیان را با دو شعبه تجاری و ملکی به راه انداخت. امینی, اار سیسد صفحه دو این تجارتخانه در سراسر سر کشور رونق بی‌نظیری یافت. از جمله سرمایه‌گذاری‌های ارباب خریدن املاک بزرگی بود که امیرآباد و جمشیدآباد در تهران جزی از آنهاست. به تحقیق پس از سقوط ساسانیان این اولین باری بود که تاجری زرتشتی به چنین موقعیتی می‌رسید. به از جانب مظفرالدین شاه به لقب رئیس و تجار ملقب گشت. ارباب جمشید در نخستین مجلس شورای ملی نماینده زرتشتیان بود. امینی 1380 صفحه 93 در همین اوان تجارتخانه های زرتشتی معتبر دیگری هم در کشور فعالیت داشت اینان با یک هم به داد و ستت مشغول بودند این تجارتخانه ها با یاری و شور و ایران پرستی پارسیان هند در پیان بودند که به تأسیس بانک ملی در ایران یاری کنند شمیم 1342 صفحه 372 درست در زمانی که پارسیان به جمع سرمایه لازم مشغول بودند و درباره این امر در مجلس شورای ملی شور و گفتگو میشد ارباب پرویز زرتشتی در یزد به تحریک سنی حضرت مورد حمایت محمد علی شاه بود به قتل رسید دو بانک یکی بانک استقرازی روس و دیگری بانک شاهنشاهی که مؤسسه انگلیسی و عامل اجرای سیاست انگلستان در ایران بود هم دست گشتند و توطعه چیدند و تجارتخانه خانه جمشیدیان را برشکست کردند ارباب جمشید از آن پس دیگر هیچگاه اعتبار اقتصادی نیافت امینی 1380 صفحه 97 ارباب جمشید مردی بسیار بخشنده و با تقبا بود بر سر صفره هر روز صدها نفر روزی داشت و از تهیه شام و نهار برای کارمندان و خریدن زمین برای ایشان دریق نمی برزید. پزشکان مخصوص رایگان ازای تجارتخانش را مداوا می‌کردند و به کارهایی چون ساختن آبنبار در بین شهرها و دادن جهیزیه و خرج عروسی برای زرتشتیان می پرداختند. وی حمام سبک جدید برای زرتشتیان ساخته بود که رایگان بود. نیز از قناتهای امیرآباد و جمشیدآباد آب رایگان به جنوب شهر تهران می‌فرستاد. در ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا، اسبو و قاطر و درشک در اختیار علما و عزاداران قرار می‌داد. در صفحه 85 تصویری از ارباب جمشید جمشیدیان، اولین نماینده زرتشتیان در مجلس وجود دارد. مدرسه جمشید جم را او به پیشنهاد ارباب کیخسرو شاه روخ ساخت و وقف انجمن زرتشتیان کرد. امینی 1380، صفحه 97. مشهور است که پس از پرداخت یکی از اقلام مخارج دربار ناصری یا شاید مظفری شاه به او گفت: ارباب چطوری از شما تشکر کنیم؟ ارباب جمشید گفت: همین گفتن ارباب برای ما کافی است. از آن پس باب شد که به توانگران زرتشتی ارباب بگویند و حال دیگر خیلی ها به زرتشتیان عادتا میگویند ارباب به جای آقا و یا حتی گاهی به جای خانم پس از آن هم توانگران زرتشتی به فعالیت اقتصادی با ابعاد وسیع پرداختند با این اختلاف که دیگر زرتشتی بودن آنها چشمگیر نبود و فقط در جنبه فعالیت اصلی خیش به امور خیریه و مسائل اجتماعی زرتشتیان هم توجه داشتند نمونه آن ایجاد کارخانیک چرمسازی در همدان است و احداث صنعت هفت چاه در تهران. شادروان دکتر اسفندیار یگانگی که حق بزرگی به گردن جامعه زرتشتی نیز دارد به این صنعت پرداخت. در های دیگر هم زرتشتیان در حد خود برای کشور کار کردند. در خدمات دولتی به ویژه فرنگیس شاهرخ یا یگانگی که فرزند محبوب ارباب کیخسرو است، تهمی بزرگ در اعتلای صنایع دستی و احیای در ایران دارد و با کاردانی و دلسوزی روش‌های ساختن و فروش را در این حوزه بهبود بخشیده است. صفحه 87 فصل پنجم دوران تجدد نهادن خط و مرزی قاطع میان حیات اجتماعی ایرانیان زرتشتی در دو دوران پیش از مشروطیت و پس از آن دشوار است زیرا پس از مشروطیت بود که ثمرات های پیشین به دست آمد و کوشندگی و اصلاحاتی به بار نشست که پیش از آن صورت بسته بود در دوران تجدد قوانینی به تصویب رسید که برابری میان اقلیت‌های مذهبی و اکثریت را بیشتر منظور می‌داشت و زمینه را برای همزیستی و اتحادی بی‌قید و شرط میان همه ایرانیان آماده می‌ساخت. ایرانیان زرتشتی در این دوران ضمن مشارکت در حیات اجتماعی کشور، به نوشته نوشت‌های ویژه برای خیش و ایجاد انجامنها و مجامعی در درون جامعه نیز دست بردند. و چون دیگر هموطنان خود به کار و فعالیت در شرایط تازه پرداختند یک پس از مشروطیت جامعه معاصر زرتشتی پس از مانکجی صاحب بیش از هر کس مرهون خدمات شهادربان عربابکی و شاهروخ کرمان 1254 خورشیدی کرج 1319 است وی همان کسی است که آیت الله مدرس درباره او گفته است در مجلس شورای ملی ما فقط یک نفر مسلمان پیدا می شود آن هم ارباب که خسروه گبر است. امینی 1380 صفحه 147 وی در کرمان درس خواند و از دوازده سالگی در تهران به مدت چهار سال در مدرسه امریکایی به ادامه تحصیل پرداخت. سپس به بمبعی رفت. پس از یک سال از سوی انجامن اکابر پارسیان معمور تدریس در مدرسه زرتشتی کرمان شد. امینی 1380 صفحه 140. او 23 سال به خدمات فرهنگی در کرمان پرداخت و در تأسیس مجدد انجمن زرتشتیان کرمان نقش داشت. انگامی که انقلاب مشروطیت به سمر رسید، در دوره دوبوم به نمایندگی مجلس انتخاب شد و فعالیت اجتماعی و از آن زمان آغاز گشت. کی خسرو با توجه و دقت و شجاعت در وضع قانون، جانب زرتوشیان و دیگر اقلیت های مذهبی را گرفت. امینی 1380، صفحات 140 و 141 و صفحات 145 و 146، وی از همان آغاز ریاست کارپردازی مجلس را احراز کرد. دوست و بیگانه به او اعتماد داشتند و از این اعتماد برای پیشبرد برد جامعه زرتوشتی کمک می گرفت. امینی 1380 صفحوت 141 و 142 وی به ازویت انجامن آثار ملی در آمد.